و صلی الله علیه نبی و نبیدینا و لفاعله الفعال و المفاعله و غیر ما از سماو عادله و غیر ما مره از سماو و آدله. لفاعله متعلق با عامل مقدم خبر مقدم الفعال و مبتدا مؤخر و لمفاعله عطف به جای بود الفعال و مفاعله ل فاعله فعال و مفاعله برای چی هستن برای وزن فاعله یعنی باب مفاعله این دو تا این اینا و غیر ما و باب واطفه غیر و ما مره غیر و ما مره غیر و مفتدای اول اضافه شده به ما مره فیل و زمیر فایلش و آهد ما به مصور غیر و لذی مره غیر از آنچه که گذشت از سماع عدل از سماع و مفتدای دوبان. عادله هو فعل و فاعل و مفعول جمله خبره از سما ضمير فاعلیش برمیگرده به سما رابطه به مبتدا دومی ضمير مفعولیش هو برمیگرده به غیر رابطه جمله خبر است به مبتدا جمله خبر اسمیه ما یعنی از سما او عادله میگه برای فعاله ما فعال و مفعاله رو داریم و هرچه که برخلاف این بیاد برخلاف اینهایی که خوندیم هرچه که برخلاف این قواهیدی که خوندیم بیاد از سماع و آدله هون سماع معادله اوست باید از عرب بشنویم تا چکار کنیم؟ بفزیریم. اگر عرب گفته میپذیریم مثلا فرض و فرمای تملقه مصدر حقیقیش چیه؟ تملق حالا اگر یک جایی دیدیم اومده تملاق آه چیه؟ این چیه؟ سمایه بجاییم لفاعله مسترانه برای فاعله دو تا مستر هست الفعال به کسر رلفا فعال نخونی الفعال به کسر رلفا ول مفاعله نه و قاتل قتالن قاتل قتالن و مقاتلتن مستر دومی مفاعله قیاسیه اما مستر اولی چیه سماهیه مثلا ما کالمه کالمهو یعنی با او چیکار کرد؟ صحبت کرد، با هم دیگه بین اسنه مکالمه داریم. اما بگید کلامن نداریم. مثلا سالما بو یعنی با او معاشرت دوستانه کرد. مصالمه داریم. آه اما سلامن بگید. نداریم. قاتلا قتالن و مقا البته یک مصدر دیگر هم داره که تو اسم مستر خدمتتون گفتم چی بود؟ قاتل قتالن، مقاتلتن و قیتالن. قیتالن و یقل بوزا و یقل بوزازا میخوره به چی؟ به مفاعله. و یقل بوزا فی ما فاوهو یا اند این مستر دوبام قلبه دارد در هر کجایی که فاول چی باشه یا باشه نه و یا سره مو یا سرطن. یا سره مو یا سرطن یقل بزارد. یعنی قلبه دارد این منظور وزن دوم. فی ما فا یا اند شما از این یقل بوزا چی می فهمید؟ که اون یکی هم می آید اما کمه مثلا یا و یوامن رسیده اما خیلی کمه بعضی قائلن که اصلا اگر فا یا باشد نمیاد ممتنه یعنی ممتنه است که فعال آورده بشه توی چی؟ اونی که فعال فعلش یاست بلکه یا سرم و یا سرتن یا بگو مو یعنی از چپ اما اگر یه جایی یا و من یه وامن دیدیم از نظر مصنف ما قالب مفاعل است. غیر قالب هم فعال میاد اما از نظر دیگران چیه غیر غالب نیست بلکه شاز است خلاصه وزن فعال در هر فعلی که فاعل فعلش یا باشد دو نظر است یکی نظر مصنف غیر غالب می آید یا وما یا ومند یکی نظر دیگران که اگر بیاید شاز است وزن فعال برای چیزی که قاول فعلش یاست و یقل و ذافی ما فاوغو یا نه و یا سرا میاسرتا یا منم میا منظر و غیر و غیر و غیرو ما مره از سما و عادله او از آن که گذشت سما چیزی است که معادل او حق و حقیقت او به دست نقل و از عرب سپرده شده از سما و عادله و نه نگاه که حالا مثال میزنه کذبه مستر حقیقی و قیاسیش چیه؟ تکذیب حالا کذبه کذابن قرآن هم رسیده کذبه به آیات اینا کذابن خب این کذابن سماییه دیگه قیاسی نیست نمیشه دیگه مثلا فرض بفرمایی سرفه یا سرفه و تصریف رو ما می ساختیم ریاستن حالا سراف رو همچه کار کنیم درست کنیم همچین چیزی که زا بنام نزا تنزیگن اون شعره سرف میر وحیتون از زیدلوها یا کما تنزی شهلتون سبیگا یا باید چی می آمده تنزیگن تنزیهتا قیاسیه اما تنزیهن سماییست از عرب شدیدیم توی این شد تملقه تملاقن تملاقن تملقش قیاسیست تملاقش سماییست تحمله یعنی به دوش کرد تحملن رسیده اما دیگه تسرفه رو نمیشه آورد قیاس کرد بر این دوتا بگیم مثلا تسرفه تسرفه همچین چیزی بگید نمیشه در تملقه و تحمله این وزن اومده در بقیه دیگه و فعلتون آخر کتاب سرفمی رو تصریف فعلتون لمرتن کجلستن کجلست میگه وزن فعله برای چیه؟ مره از اون فعل فعل سراسی مجرد وفی علتون وزن فعله برای چی می آمد؟ حیعت ها؟ مثل جلستم وفی علتون لحیعت برای هیئت می هیئت حیعت فعلت نشون میده. که جلسه، که جلسه. این بهتون نگاه کنید این طرف و اون طرفش با هم چیه؟ یکی یعنی من یه طرفش رو ترکیب کنم شما اون طرفش رو دیگه ترکیبش با خودتون چون دیگه این همه در واقع تشاکل در اعراب دارند این دو مصره قبلا هم مثل این داشتیم و فعلتون مبتداست یعنی وزن فعله لمرت متعلق به عامل مقدر خبرش و با عاطفه فعلتون مبتدا لمرتن خبر کجلستن یعنی مثالهو کجنسه و فعله لحیعه کجلسه هم اینه و فعلتون به فتح الفا اما من از سلاسیه از سلاسیه نه از غیر سلاسی من از سلاسیه البته باز شرط دیگر داره به شرط اینکه خود اون مستر مثل رحمت رقبت رحبت خودش تا بگیر نداشته باشه این لم یکون بنا المستر لآمه ال علیه اگر نباشد ساختمان مستر عامش یعنی مستر حقیقیش مستر درستش علیه بر این وزن فعلا که که مستر حقیقیش چیه جلوس مثلا بر این وزن نیست میگیم جلس تو جلسته یعنی نشستم یک نشستم میشه مفهولون چی؟ مطلق جلست و جلسته اینه. این نشست دو جلسه مفهول مطلق عددیه جلست و جلسات همینطور مشخص یا بگیم جلست و سلاس جلسات فرقی نمکن فجل دو و معت جلدت الان معت چیه مفهولان مطلقه به اعتبار مضافر که جله. مستر است و مستر بر وزن فعله دلالت بر مردم یعنی عدد کسب مستریت کن جلسه فعین کنه یعنی چی فعین کنه یعنی فعین کنه بناه المستر الام به علیه اگر بناه مستر عام بر همین وزن فعله باشه در مقابل جزای شرط ما که ان شرطیه بوده فعل مزاره جزا شده با فا بوده بهتره که فا بگید نداشته باشه ها اگه فا داشت باشه مجبوریم یه مبتداام دردی بگیریم بشه جمله اسمیه تا فا چیه درست دیگه فانکانه و فا یدل علالمره من بل و پس دلالت میشه بر مره از این فعلی که بناه مسترش بر وزن فعل است بل وزف. شرح من رحمتن واحدتن رقب رقبتن واحدتن. حالا وزن فعله برای هیئت میاد این میشه مفعولان بگیر مطلق اما مفعول مطلق نوعی میشه راسته؟ مثل من ماته ولم یعره امام زمانهی ماته نیتتن جاهلی یتن میتتن چی بوده مو تتن باب ساکل موقع مخصوص قلب به یا شده شده میتتن جاهلی یتن صفتش نوع شده هر کسی نشناست مرده همانند مردن جاهلی مردنی مردن جاهلی داشته است مردن قبل از اسلام کرد ها ما میتتن جاهلی یا آقا در حق نبی اکرام می فرماید کان یجلس و جل ستل عبید, عبید. پیامبر می نشست همیشه همانند نشستن بندگان پرتم تراغ نمی نشست کان یجلس و جل مفغولون مطلق است اما نهایی دیگه عددی و وفعله به کسر الفا لحیعت من ها چی یعنی انلم یکن بناه و مستر الامه به شرط اینکه بناه و مستر برش نباشه اگر بناه و مستر بر این وزن باشه مثلا جلسه چیه بناه و مسترش جلوس میتتن جاهلیتن چیه الموت بناه و مستر بر وزن فعله اما نشد تو یعنی گشتم مصدرش نشده خب این دیگه دلالت بر نو بگید کجلسه فا این کانه بناه اول آم علیها اگر بناه آم علیها بر چی باشد وزن فعله باشد اون بالا ورگش گفت انلم یکون بنا اول مسدرل عام علی گفتم من بر وزن منظورش گفته علی اینجا میگه انلم یکون بنا اول انکار بنا اول مسدرل عام علی ها گفتیم که منظورش برمیگرده به فعل فبل وصف یعنی پس دلالت میشه به مصدری که دلالت بر هیئت کنه با سفر اونجا صفت میاره مثل چی نشد تو از ظالتا گشتم به دنبال این گم شده از ظاله نشد تو فیروفایل از ظاله مفهول شد نشتتا عظیمتا گشتنی بگو عظیم شده مفهول و مطلقه نوی میگیم این وزن فعله که شما آوردی برای هیئت میشد مفهون و مطلق نوعی آیا این در غیر سلاسی هم میاد میگه چی فی غیر زست سلاسه در غیر سلاسی به تا المره تو مره رو با تا میفهمونیم میگیم خب حیعت رو چی کنیم میگه حیعت نداریم اگر هم اومده شازه قابل غیاس بگیم نیست پس در غیر سراسی مجرد مرش رو با تا می فهمونیم. مثلا انطلاق میشه چی؟ انطلاقتن و اگر مثلا مثل اعانت و استقامت باشه که خودش تا داره باسفت مثل بالای اما در غیر سلاسی مجرد هیئت نداریم اگر یکی دوتا اومده قابل قیاس نیست شانسه نگاه کنیم فی غیر زست سلاسه بتا المرتو المرتو مفعول دای مؤخر فی غیر متعلق با عامل مقدر خبر مقدر فی غیر ز ثلاس غیر اضافه شده به ز سلاس بتا و فی غیر جار و مجرور متعلق به ثابتون موجودان خبر المره یعنی المره تو سابتون فی غیر زست سلاس به تا با تای تنیس و شزده با با باطفه شزده فیه فیه میخوره به غیر غیر زست سلاس شزده فیه حیعتون در غیر زست سلاس شازده از وزن حیعت کل خمره مثال هو کل خمره خمره یعنی یعنی خمار زد روبند زد اختمرت المرعت یعنی اون خانوم روبند زده اختمرت مثلا بگیم اختمرت هندون خمرت اخته ها هندون خمرت اخته ها یعنی چی؟ یعنی روبند زده خانم هند اختمرت هندون خمرت اخته ها مثل روبند زدن خوالش در غیر فعل ساصی به تا با یودن لعل مرته دلالت می شود بر م. انام کن باز به ناار عام نعلی ها باز اگر مستره عام بر این وزن میگیر نباشه که انتلاه اناطلاع یعنی روانه شد یک بار رفتن یک روانه شد. و ان کان اگر خود مسترف تا دارد مثل استقامتا ااحانتا، تا امكانت قابل وصفه مثل تزکیاتن با وصف که استعانتن بگید واحدتن استقامتن بگید واحدتن این میشه مطلق و مطلقه چی, چی؟ عددی و شذ فیه میگه میخوره به غیر ذی ثلاث یعنی ای فی غیر ذی ثلاثی در غیر سلاسی شاذ است هی هیعط شاز کل کلخمرته فعلش چیه اختمرت ول ام یعنی یه نوع عمامه بستن فعلش چیه طعممن میگیم طعمم زیدون امته اخی ها طعمم زیدون امته اخی ها یا امتا جمیلتن یه نوع امام بستن جمیل یا تقم مثل قمسه قمسه یعنی یه نوع گیرا هم فعلش چیه؟ تقم مثل اختمرت تعممه و تقم مثل میگه از این ستا رسیده دیگه بقیهش رو بگید مثلا از ارتدا ردا انداخ دیگه نمیشه و ازش چکار کرد؟ قیاس کرد و ردعتن رو مثلا چکار کرد؟ درست کرد همچون چیزی؟ نیست شازد یعنی قابل قیاس نیست شذفی غیر سلاسی کل کلخمرته ول امته ول قمزه بسیار یعنی مطلب در مستق تمام حالا میریم سراغ اسم فائل و اسم فصلون یا حاضاف فصل. فی ابنیت اسماعیل فائلین و صفات مشبهت به ها در ساختمان ها و سیغه ها عبنیه جمع بنا به معنای سیغه یعنی فی سیغه اسماعیل فائلین در سیغه های اسماعی فائلین و صفات مشبهت به ها. و صفات به اسم فائل ها صفت مشبه شبیه اون و فیه عبنیت و اسماء مفهولی صفت مشابه چون شبیه به اسم فایل پشت اون کرد بعد میگه در همین باب ابنیه اسم مفهول هم مورد بحث بگید واقع میشه ابنیه اسم مفهول هم مورد بحث کفایل اون سوق اسم فائل ازا منزی سلاست یکونو که غذا که فائل سوق اسم فائل سوق فعل و زمین انت فائلش ساق یسوه و فعل امرش سوق اسم فائل مفعول سوق بساز اسم اسم فاعل اسم فاعل را کفائل متعلق به یه عامل مقدر حال از برای مفعول یعنی اسم فاعل بساز اسم فائل را در حالی که همانند وزن فاعل است یعنی به وزن فاعل است اذا گفتیم اضافه میشه به فعل شرطش و منصوبه به جزائشه. که اینجا جزاش به خاطر دلیل الجزا که این جمله سوق باشه چی شده؟ افتاره. ازا یکون و منزی سلاسته منزی سلاسته انجا رو مجرور متعلق به یکون اگر اگر تامنه باشه یعنی ازا یقع و منزی سلاسته متعلقه به عامل مقدر یعنی ثابتا موجودن خبر مقدم یکونو اگر ناقصه باشه یکونو فعل زمیر اسم یکونو یا فائل یکونو اگر یکونو تامنه بگیریم میشه فائلش اگر ناقصه بگیریم میشه چی؟ اسمش ازا یکونو یعنی زمانی که باشد یا زمانی که واقع شود اون اسم فائل منزی سلاسته یعنی من فعلن زی سلاسته احرف اون زی صفت یک موصوف مقدره یعنی من زی سلاسن تنوینش عوض از مضاف الیه یعنی من فعلن زی سلاسته احرفن از فعلی که صاحب صرف مثال میگه مثالهو چه قضا مثالش مثل قضا یقزو آه؟ قضا یقزو مثل دعا یدعو میگه اسم فاعل این قضا یقزو چی میاد؟ قازم قازم منزی سلاست ببینید گفتش عظیب چی گفت اینجا؟ گفت اسم فائل از فعل سلاسی مجرد می باشد بر وزن فائل اما گفتش اون فعل لازم باشد یا متعددی؟ گفت منزی سلاسته همین رو تو ذهنتون داشته باشید؟ دا بگیم فائل کفائلن سق اسم فائلن ازا منزی سلاستن یعنی منفیلن دی... من منزی سلاست احرفن مجردین سلاسی مجرد باشه مفتوحل این مفتوحل این هم باشه لازمان او متعدین لازم باشه یا متعدی خب مفتوحل اینشو از قضا فهمیده میشه مفتوحل اینه. مجردش هم از قضا فهمیده میشه چون متعدی بگید نیست یعنی بهش حرف اضافی نداریم سلاسی مجرد مزید بگید نیست. لازم او متعدیان این از چی فهمیده میشه؟ میگه لازم او متعدیان هم فهمیده میشه. چون قضا هم فعل لازمه، هم فله متعدی. حالا میگه متعدی. او مکسورها یا مکسور این باشه متعدیان، مکسور این باشه به شرط اینکه متعدی باشه. مکسور اینه متعدی. مثل علماء که بیاد چی؟ عالم مکسور و لین متعدی این مکسور و لین متعدیرم میگین بریم پایین تر معلوم میشه از کجا در مورد آقای ملاجرم او مکسور ها متعدی هم یکونو که غذا میباشد ماننده غذا لفظ غذا غذا یقزو به نمیسیم غزل ما او قزو الماء دو تا نقطه بذارید بنویسید سال یعنی روان شد این الان لازمه یا متعدی لازمه غزل ارقو ارق با عین قزو الارق بازم دو تا نقطه یعنی ساله ساله دمن ارق یعنی رگ غزل ارقو یعنی رگ روان شد یعنی سال دمن. روان شد از جهت خون قازل بولو لغت از داده ببینید یعنی انقطع قطع شد قزا شیبو قزا الشیبو یعنی پیری قزا شیبو دوتا نقطه یعنی اسرعه پیری زود رس اومد خیلی زود اومد اینا همش چیه لازمه تو این معانی ها به معنی اسرعه ساله قطعه لازم اما داریم که متعدی هم آمده است قضت تعامو از سبیه قضت تعامو از سبیه یعنی رو آورد قضا بچه رو یا قضاوتوهو انا به لبن قضاوتوهو انا به لبن قضاوتوهو متحدیه ها چیه؟ مفهول بشه پس ببینید موقعی که یعنی قضا دادم اون رو به شیر شیر بهش دادم به بعد چه شیر دادم قضاوتوهو انا به با این معنی چیه؟ است. خب میگه او متعدین او مکسورها متعدین یکونو که قضا بل معجمتین میگه قدا نخونی یعنی صبح خارج شد قضاست بل معجمتین این ادا هم نخونی ادا یعدو یعنی دوید اونم نه قضا بل معجمتین دو تا نقطه داره ای ساله معنا میکنه یعنی چی؟ ساله در صورتی ما گفتیم به معنای لازم که از انقطعه هم معنی دارد هم همچیه معنا دارد لازمه فعوه قازن علامت اختصاری سرفی اینه که برای اسم فاعل میگن چی؟ فعوه برای اسم مفعول میگن چی؟ آها میگن زربه فعوه زاربون وزاکه مزروبون لذا میگه فعوه قازن یعنی پس اسم فاعلش عبارت است از قازن و زهبه فهوبه بگید ظاهب مثال تکراریه اون فقط موتل بود قضا یغزو این چیه موتل نیست سهیه زهبه فهوبه ظاهب زربه متعدیشه فهوبه ظارب ما گفتیم از همین قضا میتونیم متحدیش هم درست کنیم نه قازن یعنی قضا دهنده زربه فهوبه ظارب و به فهوبه بگو که فعلا مثال زد که متعدی هم هست رکه رهم اومده چی راکه وقوه نقطه سر این مثال برای مکسور ها متعدی ان وقوه قلیلون وقوه قلیلن فی و فعل تو و فاعل غیر موعدا بل او، و هوا قلیلون میگه و این وزن اسم فائل و هوا وابا به حالیه حال از اسم فائل همون مفعول بالا گفت بساز اسم مفعول را در حالی که به وزن فائله میگه و حالا اینکه باست این وزن فائل قلیلون خوب هم مبتدا قلیلون خبرش این وزن فائل قلیل است در کجا فی فعول تو در بگو فعول تو فعوله داشته باشیم اسم فائلش بیا چی فائل قلیله هرچی اومده غیر این بوده مثلا حسونه اومده چی حسن شرفه اومده شریف کرومه اومده کریم فی فعول تو فعول تو متعلقه به قلیلان فی فعول تو و فعله عطفه به جای فعول تو غیره معده غیره معده غیره معده حال از وزن فعله چی گفت تو اینجا؟ گفت وزن فعل قلیل است در فعول تو و فعله به شرط این که اون فعله بگید متعدی نباشد از این چی استفاده میکنید شما که اگه وزن فعله متعدی باشد قلیل نیست همون چیزیه که ایشون گفت, گفت و مکسور ها بگید متعدی بل قیاسوهو فعل بل بل ازرابیه حرف ازراب قیاسوهو مبتدا فعل قبلشید میگه اگر وزن فاعل داشته باشیم و وزن فعله غیر متعدی قیاسش ها اینه که اسم فاعل بر وزن فاعل نیاد قلیلا بر وزن فاعل میاد کسیرا و قاعدتا بر چه وزنی میاد فعل میاد و افعل و فعلان افعل و فعلان عطف به جای فعل قاعدتا میگه بر این سه وزن میاد مثلا فرح فرح چیه غیر متعده اومده چی؟ سفت مشببه؟ فعل، فرون ها درست افل و فعلان مثال مثال میزنه نه و اش اومده چی؟ عشر که آقا ماسم میگه ما خرج تو عاشند ولا طرار میگه من به جهت افساد و پوز خروج نکردم مثالهو نحو عشر و نحو صدیان حتی به جای نحو قبلیه صدیان یعنی تشنه صدیه اومده چی؟ صدیان بر وزن فعیله معنیسش میشه صدیان یعنی زن تشنه مثل عدشان و عدشان و نحو الاجهر عل اجهر مثلا ال احمر مؤنثش میشه چی همراه درسته عل اجهر اعطف به جای همون نحوه قبل چی گفت گفت اگر یک زمانی ما فاعل تو داشتیم یا فعلی لازم داشتیم خیلی کم پیدا میکنید که وزن فاعل اسم فاعلش مادة بود. بلکه قیاس اینها اینه که بر وزن فعیل یا افعل یا فعلان بیاد مانند عشر و صدیان و اجهر بیاییت میگه میگه وقوه قلیلون و این وزن فائل قلیل است میگه قلیل یعنی مقصورون الاس سما یعنی قیاس نمیتونی بکنی یعنی شازه مقصور است بر چی سما یه فعل مثلا فعوله رسیده دیگه تو نمیتونی کرومه یا یه فعل دیگر هم برایش چکار کنی؟ درست کنی شازه مقصوران علا سما پس قلیل به معنای شازه حالا اگه گفتید این قلیل رو از کجا داره بردی به معنای شازه خودش تو فکرارت داره نکات رو تو عبارت فکر کنید ببینید میگه وحوه قلیلون بعد میگه بل قیاسوهو فعیل قیاسش فعله پس معلوم میشه اون قلیله چیه غیر قیاسیست یعنی چیه شاست مقصوران عل السما فی فعل تو به زم ال این و فعله بکسر ال ع میگه هالکونهی این هالکونهی رو نوشت که بگه این غیر حال است از برای فعل فقط چرا چون فعل تو حتما لازم هست هیچ وقت متعدی نمیشه غیر موعدا به شرط اینکه متعدی بگید نباشد که هموزه هموزه توش شد و فهوه بگید آمیز اومده توش امینه امینه فهوه آمین سلمه فهوه بگو سالم اغیرت المرعتو تاهیه آقره یعنی اونی که نمیزاد عقیم آقره یعنی فعل داریم بر این واژه امنفخ و آمین امن بله قیاس او بلکه قیاسش یعنی قیاس فعلا بلکسر ای اتیان الوصف منه میگه ضمیر قیاس او میخوره به فعلا بلکه قیاس فعلی بلکسر یعنی چی قیاس؟ یعنی اتیان و وصف منحو ببینید نمیگه اسم فائل چون دیگه میشه صفت مشبهه چون دیگه دلالت بر ثبوت میکنه اتیان و وصف منحو فعل احراز در چیزهای غیر ذاتی احراز اونهایی که بقا ندارد اتیان و وصف منحو فعل احراز فعل وزن چی میاد؟ فعل میاد بل قیاسه فعلون و ایلون و فلخلقت و در آفرینش خلقت و الوان رنگ ها بر وزن چی میاد؟ افعل و ما دل لعلل امتلاع و حرارت الباطن و در هر چیزی که دلالت بر امتلاع کنن یعنی پر بودن و حرارت باطن یا حرارت دورونی هر چی که دلالت بکنه بر وزن چی میاد؟ فعلان میگه میگه سه تا مثال زده یکی فعل مثال زده در احرازه یکی فعلان مثال زده در امتلاع و حرارت باطنه یکم افعل مثال زده در خلقت و الوانه فعلان وزن فعلان میاد برای حرارت باطن و امتلا نوا عشر مانند عشر فعلش چیه؟ اشره. و فره فرهون. فعلش چیه؟ فره ها. بر وزن فعله است دیگه مثلا بتره. اما عشره و بترن سرمست شد فعوبتی؟ بتر. و نه و صدیان و مثل صدیان فعلش چیه صدیه صدیه عدشان عتش شبعان شب یادتون خوندیم بر وزن فعیله عدشان و شبعان اینا دلالت بر چی میکنن امتلا مثلا مثل شبعان زیر عدشان و صدیان حرارت باطن میسوزه اشنشه شبعان ریان یعنی سیراب ریان سیراب ضد عدشان و صدیانه شبان زدشو نعی برده یک کاش آورده بود جاوان جاوان یعنی چی؟ گرسنه. محنسش بشه چی؟ جاوان اگه مثال اضافه کرده خیلی خیلی نحو اینا هم ماله امتلاع و حرارت باطن و نحو الاجهر مثلا سوه در ها الاسود سیاه الاجهر میگیم الاجر هر کدومه میگه برای عیب خلقت و هو الذی لا یبصر فشمسه اونیه که تو خورشید نمیتونه چشمش رو باز کنه ها رو باز کنه تو نور نمیتونه چشمش رو باز کنه آه. آفتاب میزنه به چشمش این تو نون بعضی دیدی دید این هایی که خلقتن سرشون سفید و توی نور قادر به دیدن نیستند از عینک‌هایی هم استفاده میکنند که معمولاً تاریکه. رضا این‌ها رو میگن چی؟ الاجهر مؤنثش میشه جهرا. و اول ذی لا یبصر الشمس. ول احول باز خلقت. چپچش، ول اعور یکچش، ول اخزر اینم رنگه، ول اسود. سبز و سیاه. درست شد خب حالا وزن فعوله چطور میاد واو واو استینافیه چون سوق فیلهم بود حالا میگه وفعلون اولا وفعیلون به فعوله فعل مثل سهله سهلن سهل سعب یعنی آسان سهل فعیل مثل شرف و شریف کرامه بگو كرین. میگه فعل و فعیل اولا هستن به وزن فعوله برای فعل فعوله فعلان مبتدا اولا خبرش یعنی افزر و فعیل عطف به جای فعلان به فعوله متعلقه به اوله اصلش اینطوریه فعلون و فعیلون اوله به فعوله فعل و فعیل اوله هستن به فعوله مثال بزن میگه او که از زخم مثالش مثل از زخم یعنی کلوفت پت و پت. لذا زخمه زخامت رو ما از این داریم وزن فعل است جموله اومده چی؟ جمیل میگه والفعلو جموله جمیل فعلش کدومه؟ جموله که زخم ول جمیله اتفاست به جای از زخم والفعلو جموله الفعلو مبتدا جمولا خبرش جمله حال است از برای الجمیل میگه مانند زخم و جمیل فعل جمیل همه برای تست است جامون میگه و فعالا به سکون این فعالا به سکون چی و فعلون به سکون عین اولا و فایلون به فعالا به زمها این که میگه اولاس میگه و تفسیر بعد با من بیاد دیگه میگه وزن فعل و وزن فایل اولاس به فعالا یعنی چی یعنی وزن فایل هم میاد. اما اولویت با کدوم با فعل است و فعید. لذا من فاعل متعلق است به اولا اگر پشت اونم نوشته بود خیلی بهتره چون اولو تحصیل با من میاد میشد فعلون به سکون ال ای اولا من فاعلن و فعیلون به فعلا به زمره ها من و غیرهی از وزن فایل و غیر فایل این بهتر است وزن فعل و که از زخم فعل و الفعل و مثل زخم فعلش چیه؟ زخومه شهومه یعنی با شهامت شد شهامت مسترشه فاقه شه شهم یعنی کسی که جرأت داره با شهامت هست و جمیل ول و جموله. جمیل فعلش اومده چی؟ جموله شریف شروف و کریم و افعالان فیه